بخش بیست و اگر یک در میلیون لاله دوست داشت دهن لقی کند و قضیه درس پیدا می کرد حسن چون مدرسه میرفت، باز هم زودتر از ظهر سر وقتم از این بابت جای نگرانی نبود روی همین اصل فرداش دمدمای ظهر از خانه زدم بیرون اول بسم الله رو هم را به طرف میدان مقدم کش کردم که چند نقص سیگار بخرم میدان مقدم تنها میدان در خواهر میان است که چهار راه است. یعنی هیچ چیز گرد یا مربع یا چیز دیگری توش نیست. ولی باز میدان است. اینقدر هم تنگ و تروش ساخته شده که اگر شما یک درخت وسطش بکارید، تا خود میدان فلاح راهبندا می شود. موضوع نبودن یک چیز گرد وسط میدان مقدم جاذبه توریستی ندارد، ولی کم کلی سرگرم کننده است. هر وقت از مدرسه اخراج می شوم آنقدر اوقات فراغت سرم می ریزد که با دو تا پاکت سیگار در روز هم نمیشود پارش کرد. دو تا سیگار را پاش به پاش گیراندم. من مثل اساس سیگارها رو چستود نمی کنم. برای همین نمیتوانم بیشتر از دو تا سیگار را روی هم روشن کنم وگرنه حالت های خفگی بهم به دست میدهد. و باطر برای خودم می شنگیدم. سر بیست متری قله مرغی رسیده بودم که از مناره های مسجد حاجی ازان زدند خدا می‌داند که چقدر هز کردم جلدی پریدم توی مسجد کلی مسجد ریزا دیگر توی قل مرغی هست اما من یکی مشتری پرپا خود آجی نعمتیم نه که زیاد مسجد بروم ولی هر وقتم که می‌روم فقط همینجا جا روم آشق آجیم آجی جز ترابه های بیشیده پیله خوب به حساب میآید اینقدر خوب که آدم اذیت می شود از است که برای پدر و مادرش کابی خدا یا مرزی خریده است. هر کسی را هم که فکرش رو بکنید شب و روز روی سرش قسم می‌خورد. نصف بیشتر محبوبیتی که توی محل به هم زده برای روزه و استخاره‌هاش هست. روزه حضرت اولفظ میخواند که دل سنگ آب می‌شود. از آن طرف استخاره میزند که بیا و ببین. هر چه بگوید همان می‌شود. شاباجی که میگوید از چین و ماچی میان واسه استخاره‌هاش. نفسش حق. یه ایران و توران میشناسنش من نمیدانم که توی چین و ماچین کسی به استخاره اعتقاد دارد یا نه ولی از من قبول کنید که نفس حاجی جدا حق است علی پسر سر موتور خریدنش دوبار پیشش استخاره گرفت هر دوبار هم مثل چی بد آمد حالا بعد از یک سال که موتورش را خریده هر دو تا پاش را پلاتین گرفتند دکترها گفتند که دیگر آدم اول نمیشود و تا آخر عمر باید شل بزند آنها راه رفتنی مثل پنگوان یک پا به یک با لنگ می‌اندازدند. چند سال پیش هم یک بار نماز باران خواند. چند روز بعد باران آمد. آنهایی که به اینجور چیزها اعتقاد ندارند میگویند که باران خود به خود گرفته بود ولی من که میگویم دعای حاجی درگیر شده است. اگر باران خودش میخواست بیاید کار ملت به نماز و روزه نمیکشید. از توی حیات دیدم که داشتن قامت می‌بستند. کفشم را توی آبدارخانه گذاشتم و داخل مسجد شدم. تکبیر اطول را که گفتم یادم افتاد که من چند وقت است که هستم وضو نگرفتم. الان دیگر همه مردم دنیا می دانند که نماز بی به درگاه خدا قبول نیست. اما من چه چاره داشتم؟ نه وقت داشتم نه ایچی. برای همین با خاک زیر جامهری تیمم کردم و کارم را از همانجا پی گرفتم. یکی دیگر از چیزهایی که من از این بابا خوشم می آید این است که نماز را شلاقی می خاند. هنوز روز نرفته بلا تشمیل مثل شافنر از جا میپرد حتی آنقدر وقت نمیدهد دهد که مکبر نفسی چاخ کند این کار را هم برای این انجام میدهد دهد که دل پیروپاتالهای های مسجد را به دست بیاورد ولی خودش هم خوب میداند که جوان ها از این کارش راضی ترند تا پیرمردا همش هم این نیست بین دو نماز یک حدیث ای یک خطی بیشتر نمیخواند خواند که این یکی جده شاهکار است همیشه میگوید حرف حساب دو کلمه آقا جون بقیهش حرف ناحسابه بعد از مدتها چند روکد نماز خالصا مخلصا توی صفحه آخر پشت هاجی خواندم. خدا میداند که توی آن روزگار کوفتی من چقدرم چسبید حالا حالاها که گمان نمیکنم، این پیرمرد های سابقه دار به امثال من توی صفحه اول راه بدهند فعلا هم که سگ روسیه خدا هستم ولی اگر یک روز هم به آخر عمره مانده باشد بالاخره درکت نماز با ضوع توی صفح اول به کمرم میزنم. کار نشد ندارند. دو تا نماز که تمام شد دهان نفر پیر و جوان گرد آاججیهرک زدند. به خدا قسم هیچ کدامشان هم کار خاصی ندارند، اما سال به دوازدهما کارشان همین است. هر روز و هر شب دور هجادش جمع میشوند و و خود و بیجهد وقت شیخ را میگیرند. باید صبر میکردم که دوروبرش کمی خلبتتر شود. اما چون همیشه اداج را تا دم در همراهی میکنند. هیچ فخص سرش از یک حدی خلبتر نمی شود. بلند شدم رفتم کنار سجادش پاقا شقی نشستم و سلام کردم. تیپ با قیافم است که توی اماکن مذهبی یا اصلا تحویلم نمیگیرند یا جوری تحویلم می گیرند که آدم خیال میکند با کس دیگری اشتباه گرفتند. حاجی سلام گرمی بهم کرد و دستش را به طرفم دراز کرد. من هم باش دست دادم. بس که سهل است. اگر دلش میخواست حاضر بودم با اینکه آن همه ریش دارد بدون هیچ منتی باش و روبوسی هم بکنم که دلش نخواست. گفت بفرما آقاچون حاجی آقا یه استخار واسم میزنید لبخند زد پسرم استخاره را میگیرند اونی که میزنند تفعوله راست میگفت هیچ وقت از این زاویه به موضوع نگاه نکرده بودم گفتم بله حاجی آقا حالا استخاره میخوای یا تفعال؟ گیت شدم گفتم نمیدونم هر کدوم که بهتره شما ما بگیر به همین سوی چراغ کارم بد جوری لنگه ام اینجوری حرف زدم که دلش کباب بشود و استخارش با خلوص نیت باشد استخاره سرسری به درد هیچ کسی نمیخورد حاجی گفت انشاءالله گره از کار همه مؤمنین و مؤمنات باز بشه هر کسی که آن دور اطراف صدای حاجی را شنید آمین گفت حاجی قرآنش را برداشت چشمش را بست و هنگار که میخواهد کار خطرناکی انجام بدهد انگشت سبابه‌اش را خیلی آرام و با احتیاط روی عطف کتاب مالید داشت شروع می کرد اما حواس من هنوز جفت نبود یک لحظه لاله و مجید و قضیه بازاریابی و اتقیافه نحظه تکل تکلو این برق از جلو چشمم رد شد خواستم ازش بخواهم و وقتاً کار را متوقف کند که دیگر دیر شده بود انگشت سبابش را تا تهلای قرآن برده بود کتاب را باز کرد و آرام و زیر لب خواند. بعد سری تکان داد و گفت بده آقا جون بده تهش زندگید به هم میرزه پشیمونی داره خندم گرفت خبر نداشت که زندگی من از همه سرش به هم ریخته است گفتم حاجی آقا بی زحمت یه بار دیگه بزن یه بار دیگه یا یکی دیگه نه nah, همینو یه بار دیگه بزنید برای چی؟ نیتم قرقاتی شد اگه میشه یه بار دیگه بزنید همین یه دفعه رو یکی از آنهایی که دور حاجی بود سقلمهی می هم زد حاجی دوباره لبخند زد و گفت نمیشه پسرم برای یک نیت دوبار استخاره نمیگیرن داشتم بخیه به عبدوغ میزدم اصرار زیادی فایده ای نداشت برای همین بحث رو عوض کردم پس یه لطفی بکن یه استخاره دیگه بزنین بگیرین حاجی سری تکان داد که اگر میخواست پشپندش حرفی بزند حتما میگفت عجب گیری کردیم ها بقیه کسانی هم که پیش ما بودن یا از دست من عصبانی شده بودند یا نیششان تا پس کلهشان باز بود. به هر حال محل سگشان نگذاشتم حاجی نعمتی لپاش را بی صدا تکان داد و انگشت سبابه اش را دوباره لای قرآن برد اول دو سه خطش را خواند و بعد کله اش را رو به من گرفت و گفت بازم بده خودت رو با دست خودت به بیراهه میکشی آقا جون. راهتو کش نکن به خدا توقع کن داغ شدم داغ داغ لاکردار قیب میگفت انگار که کسی راپورتم رو بهش داده بود. قشنگ می که دارم چه غلطی می کنم. گفتم ببخشید حاجی آقا همه چیزها رو همون تو نوشته. بسهاش را از کنار دستش برداشت و بلا تشبیم مثل قرقی از زمین جاکن شد. نمیدانم ماشاءالله این همه که تر و فرز است، قبراغه رو برای چی چیش می میخواد. گفت بله آقا جون همه اینا همین توه. مگه راه و تو از همین کتاب نمیخواستی؟ جلل خالق گفتم دیگه چی حاجی چیز دیگه هم نوشته؟ میخواستم ببینم اسم یک زنی چیزی همین طرف آن طرف آیه آمده است یا نه آیه را خواند اما معنایش رو نفهمیدم گفتم ما که به شما بینون داریم ولی اگه میشه یه لطفی بکنین همین رو که گفتین روی تیکه کاغذ واسه هم بنویسین میخوام به کسی نشون بدم آرام آرام داشتم حسرش را سر می بردم. خودم هم میدانم. گفت، پس مدرک میخوای پدر صدواتی؟ نه این حرفا کدومه؟ واسه محکم کاری؟ دستش را توی جیب بغل لب بادهش کرد و یک دفترچه کوچک جیبی درآورد و همانطور سر این آیه را روی یک برگ نوشت. بسم الله ولا تلقو به عیدی خود را با دستان خیش به حلاکت نیافکنید. آیه 195 سوره بقره پایین برگم نوشته بود یا علی آقا جون خواستم حالا که بحثمان گلنداخته در مورد مسئله نماز بی هم ازش بپرسم اما روی اخلاق خوشحاجی هم بیشتر از این نمیشون حساب کرد به هر حال ممکن بود هر لحظه من را با اردنگی از خانه خدا بیرون کنند. روی همین اصل تا احترامم سر جاش بود تشکر کردم و جیم شدم نباید این کار رو میکردم اصلا نباید استخاره میگرفتم حالا که دوبار پشت سر هم راه نداده بود هر بلایی که میخواست سرم بیاید حقم بود آدم وقتی خودش از طی قلب تصمیمش رو گرفته که کاری را بکند یا نکند استخاره کردن غیر از دردسر سر چیز دیگری ندن